کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده اوستان حیوانات قدرشناس روزی روزگاری زن و بودند که سه پسر زیبا داشتند اما به قدری فقیر بودند که حتی غذای کافی برای خوردن نداشتند بنابراین پسرها تصمیم گرفتند دنیا رو بگردند و شانس خودشونو همه جا امتحان کنند قبل از اینکه راه بیفتند مادرشون به هر کدوم یه تیکه نان داد و براشون دعا کرد بعد پدر و مادر با اونها خدافزی کردند و پسرها سفر خودشون رو شروع کردند. برادر کچیک تر فرکو نام داشت و جوانی زیبا با بدن نیرومند و چشمای آبی و موهای طلایی و پوستی مثل شیر داشت. دو برادر دیگه خیلی بهش حسودی می چون فکر می او با این چهره زیبا حتما موفقیت بیشتری نسبت به اونها به دست می یه روز، هر سه برای استراحت زیر سایه درختی نشستند هوا خیلی گرم بود و اونها حسابی خسته شده بودند فرکو خوابش برد اما دو پسر دیگه بیدار بودند برادر بزرگتر به دومی گفت آیا بلای سر فرکو بیاریم او خیلی زیبا و همه بیشتر بهش توجه میکنند تا به ما اگه اونو از سر راهمون برداریم خیلی بهتر میشه برادر دومی جواب داد موافقم. پیشنهاد منم اینه که نان اون رو بخوریم و از نون خودمون بهش ندیم. مگر اینکه قبول کنه چشماشو در بیاریم یا پاهاشو بشکنیم. برادر بزرگ از این پیشنهاد استقبال کرد و در حالی که هنوز خواب بود دو پسر بدجنس نون پسر بیچاره را برداشتند و همه رو خوردند. وقتی او بیدار شد خیلی گرسنه بود و خواست نونش را بخوره اما برادراش گفتن شکمون. وقتی خواب بودی نونتو خوردی؟ اگه هم فکر کردیم ما از سهم خودمون بید میدیم. کور خوندی؟ فرکو هرچی فکر کرد نفهمید. چطور ممکنه در خواب چیزی خورده باشه. اما حرفی نزد و تمام اون روز و شب بعد رو گرس نمون. اما صبح روز بعد گرسنگی اونقدر بهش فشار آورد که به گریه افتاد و از برادرش خواهش کرد کمی نون بهش بدن اما موجودات بیره خندیدند و حرفهای روز قبل رو تکرار کردن. و تکرار کردند فرکو به خواهش و التماسش ادامه داد تا اینکه برادر بزرگ گفت اگه بذاری ما یکی از چشماتو در بیاریم و یکی از پاهاتو بشکنیم کمی از نون خودمون رو بهت میدیم با نیدن این کلمات فرکوی بیچاره گریه شدیدتر شد و تا زمانی که خورشید به وسط آسمون برسه گرسنگی رو تحمل کرد اما دیگه طاقتش تمام شد و اجازه داد چشم چپش رو در و پای چپش رو هم بشکنن وقتی این کار انجام شد او دستش رو برای گرفتن نون دراز کرد اما تک نونی که برادرها بهش دادن اونقدر کوچیک بود که پسرک در یه لحظه اونو خورد داد و ارتماس کرد یه تیکه دیگه هم بهش بدن اما هرش فرکو بیشتر گریه میکرد و به برادراش میگفت که داره از گرسنگی میمیره اونها میخندیدند و اونو سرزنش میکردن که چرا اینقدر شکموه به این ترتیب او تا پایان اون روز از گرسنگی زجر کشیده اما با فرارسیدن شب تحملش تمام شد و اجازه داد چشم راستشو در بیارن و پای راستش هم بشکنن. در عوض یه تک نون دیگه بهش بدن برادرها اونا معیوب و بدقیافه کردند و در حالی که رو زمین افتاده بود و ناله میکرد اونو تنها گذاشتند و و بدون او به سفرشون ادامه دادند فرکوی بیچاره تکنونی نونی را که بهش داده بودند و خرد و ناله میکرد و کمک میخواست اما هیچکس صداش رو شنید نه کمکش اومد شب شد و پسر کور بیچاره که چشمی برای بستن نداشت فقط خود را روی زمین میکشید و پیش میرفت بدون اینکه بدونه به کجا میره اما با طولوی خورشید فرک احساس کرد گرمای خورشید بدنشو میسوزونه و دنبال سایه خنکی گشت تا استراحت کنه او از تپه بالا رفت و روی چمن دراز کشید فکر میکرد زیر سایه یک درخت بزرگه، اما اونجا درختی وجود نداشت، بلکه چوبه داری بود که دو کلاق روش نشسته بودند. کللاها مشغول صحبت بودند، اولی به دومی گفت: این دورا برای منطقه دیدنی یا جالبی وجود داره. دومی جواب داد: بله، جاهایی که در هیچ کجای دنیا غیر از اینجا وجود نداره. اون پایین؟ زیر پای ما دریاچی هست که هلکستون آب تنی کنه حتی اگر در حال مرگم باشه فوری سرحال و سالم میشه و اگه کسی چشماشو با شبنمهای روی این تپه بشوره تیز بینده از عقاب میشه حتی اگر کور مادرزاد باشه کلاق اولی گفت خب چشمای من که هیچ احتیاجی به حمام شفابخش نداره چون شکر خدا از همیشه بهتر میبینه اما یکی از بالهام از وقتی که چند ساله پیش تیر خورد ضعیف و کمزور شده پس بهتره سراغ چشمه بریم تا من دوباره سالم و قوی بشم و پرواز کنن دور شدن حرفای اونها فرکو رو خیلی خوشحال کرده و او تا بعد از ظهر سب کرد تا بتونه کمی از اون شبنم های گرونبه ها رو به چشماش بماله بالاخره گرد و خاک بلند شد و خورشید پشت کوه ها غروب کرد. کم کم هوای روی تپه سرد شد و قطره های شبنم چمن ها رو خیس کرد. فرکو صورتش رو به زمین مالید تا چشماش خیس بشه و در یه لحظه متوجه شد میتونه بهتر از همیشه ببینه. ماه در آسمو میدرخشید و راه او را تا دریاچه روشن میکرد تا پسرک بتونه پاهای شکستش را هم تو اون بشوره. فرکو به لبه دریاچه خزید و پاهاش را تو آب فرو کرد. خیلی زودتر از اون که فکر می کرد پاهاش مثل قبل قوی و سالم شدن و فرکو خدا را شکر کرد که او را به طرف تپه برد تا گفتگوی کلاغا را بشنوه. او قمقمش رو از آب شفابخش پر کرد و با روحی عالی به سفرش ادامه داد. هنوز راه زیادی را نرفته بود. که گرگی را دید که با سه پای سالمش لنگان لنگان پیش میره و با دیدن فرک و زوزه پردردی سر داد پسر گفت دوست خوبم نگران نباش من همین الان پاتو خوب میکنم و کمی از آب شفا را رو پای گرگ ریفت و یک لحظه بعد حیوون با هر چهار پاش میدوید و بالا پایی میپرید. حیرون از جوان مهربون تشکر کرد و بهش قول داد در اولین فرصت محبتش رو جبران کنه. فرکو به راش ادامه داد تا اینکه به یه زمین شخم زده رسید. چشمش به موش کوچکی افتاد که خسته و درمونده با دو پای عقبش روی زمین میخزید. چون دو پای جلوش به وسیله یه تله شکسته بود. دل فرکو برای جونور بیچاره سوخت و با مهربونی باش حرف زد و پاهای کوچیکش با آب شفابخش شست لحظه‌ای بعد موش سالم و سراحال شد و بعد از تشکر از پسر مهربون جست و خیز کنان از میون شیارهای زمین به راش ادامه داد فرکو به سفرش ادامه داد اما هنوز مسافت زیادی طی نکرده بود که با ملکه زنبورهای اصل روبرو شد او یکی از بالهاشو دنبال خود میکشید چون یه پرنده بزرگ اون رو از وسط پاره کرده بود فرکو همونطور که به گرگ و موش کمک کرده بود دلش میخواست به او هم کمک کنه به همین دلیل چند قطره از آب شفابخش رو روی زخم بال ریخت و ملکه زنبور اصل فوری خوب شد او به طرف فرکو اومد و گفت: از محبت تو واقعا سپاس گذارم. یه روز این کار تو جبران خواهم کرد. و با خوشحالی وزوز کنان دور شد. فرکو روزهای زیادی به هدف راه رفت تا اینکه بالاخره به سرزمین جدیدی رسید. با خودش فکر کرد بهتر مستقیم به قصر بره و برای پادشاه کار کنه. چون شنیده بود دختر پادشاه خیلی زیباست به همین دلیل به طرف قصر سلطنتی رفت و همین که وارد شد برادرهاش اونجا دید هر دوی اونها در خدمت پادشاه بودند و وقتی فرکو را با چشمها و پاهای سالم دیدند نزدیک بود از ترس سکته کنند چون نگران بودند مبادا او همه چیزو برای پادشاه تعریف کنه و اونها رو اخراج بشن از اونجا. فرقو تازه وارد قصر شده بود که همه نگاهها به طرف این جوون خوشیما چرخید و دختر پادشاه زیبایی او رو تحسین کرد. چون او تا به حال ای به این جذابی ندیده بود. برادران متوجه این نکته شدند و حسادت ترس اونها رو بیشتر کرد. و یه بار دیگه تصمیم گرفتن اونو از بین ببرند اونها نزد پادشاه رفتند و گفتند فرکو یه جادوگر بد که برای بردن خانم به قصر اومده بعد پادشاه فرکو را اهضار کرد و گفت تو جادوگری و میخوای دختر منو و بدزی من تو رو به مرگ محکوم میکنم اما اگه بتونی سه وظیفهای رو که از تو میخوام انجام بدی جون تو نمیگیرم ولی باید از این کشور بری اما اگه نتونی از احده دستورات من بر بیای تو رو روی نزدیکترین درخت دار خواهم زد بعد روبه دو برادر بدجنس کرد و گفت یه کاری بهش پیشنهاد بدین هر چقدر هم سخت باشه اشکالی نداره چون اگه انجامش نده کشته میشه اونا بدون اینکه زیاد فکر کنن گفتن دستور بدید در یه روز قصری زیباتر از این قصر بسازه و اگه موفق نشد دارش بزنین. پادشاه از این پیشنهاد خوشش اومد و به فرکو دستور داد. روز بعد کارشو شروع کنه. دو برادر خوشحال شدن چون فکر کردن به زودی برای همیشه از دست فرکو راحت میشن. جوونه بیچاره دل شکسته و غمگین زیر لب لحظه ای را که وارد این سرزمین شده بود نفرین میکرد. همونطور که فرکو در چمنزارهای اطراف قصر قدم میزد و فکر میکرد چطور میتونه از مرک نجات پیدا کنه؟ زنبور کوچکی پرواز کنن از راه رسید و رو شونش نشست و گفت دوست مهربونم مشکلی پیش اومده؟ آیا کمکی از دست من برمیاد؟ من همون زنبوری هستم که تو بالشو خوب کردی؟ دلم میخواد یه جوری از تو قدر دونی کنم فرکو زنبور ملکه را شناخت و گفت افسوس تو چطور میتونی به من کمک کنه چون کاری را که به عهده من گذاشتن که هیچ کس در دنیا نمیتونه انجام بده مگر اینکه یه نابغه باشه من باید تا فردا عصر قصری زیباتر از قصر پادشاه بسازم زنبور گفت فقط همین پس خیالت راحت باشه چون تا فردا قبل از غروب خورشید قصری ساخته میشه که زیباتر از همه قصرهایی است که پادشاه تا به حال دیده. همینجا بمون تا من برگردم و خبر تمام شدن کار را بهت بدم. حشری کوچک بعد از گفتن این حرف با خوشحالی به پرواز درآمد و فرکو که به حرف زنبور اطمینان داشت روی چمنها دراز کشید و تا فرد و صبح با خیال راحت خوابید. روز بعد تمام مردم شهر صبح زود بیدار شده بودند تا ببینند مرد غریبه عصر با و چطور و کجا خواهد ساخت اما شاهزاده خانوم ساکت و غمگین بود او تمام شب به قدری گریه کرد که بالش او خیس شده بود و برای جوون دعا می کرد. فرکو تمام اون روز را رو در چمانزار ماند منتظر بازگشت زنبور شد هنگام غروب زنبور ملکه برگشت روی شانه او نشست و گفت قصر باشکوه آماده است خوشحال باش باشو پادشاه را به طرف تپه پشت دیوارهای شهر به بعد. و بعد وزوز کنان از اونجا دور شد فرکو فوری از پادشاه رفت و گفت قصر آماده است همه درباریان برای تماشا به راه افتادند وقتی چشمشون به اون منظره افتاد از شدت تعجب نمیدونستند چیکار کنند. درست خارج از دیوارهای شهر روی تپه قصر باشکویی خود نمایی میکرد که از زیباترین گلهای دنیا ساخته شده بود. تمام سقف از گل سرخ بود، پنجره زنبق دیوارها میخک سفید، و زمین از پامچال قرمز و بنفشه، درها، لاله و نرگس و دستگیره هم از چند آفتاب گردان پوشیده شده بودند. عطر گلهای سنبل و بقیه گلهای خوشبو در اطراف پراکنده بود. همه را از خود بی خود می کرد. این قصر زیبا را زنبور ملکه قدر شناس ساخته بود و از همه زنبورهای اون سرزمین کمک گرفته بود. پادشاه از تعجب نمیتونست حرف بزنه و شاهزاد خانم با خوشحالی گاهی به قصر و گاهی به فرکوی شاد نگاه میکرد. اما دو برادر از شدت حسادت قرمز شده بودن و تنها فکری که به ذهنشون می رسید این بود که فرکو واقعا یه جادوگره. پادشاه خیلی حیرت بود و نمی دونست قریبه چطور تونسته دستورات اونو اجرا کنه. در زم ناراحت بود که اون موفق شده جون خودشو نجات بده. او رو به دو برادر کرد و گفت او در آزمایش اول پیروز شد و شک نیست که از یه قدرت جادویی استفاده کرده. اما حالا باید چه کاری از او بخواهیم؟ آزمایش دوم باید اونقدر سخت باشه که اون شکست بخوره و کشته بشه. برادر بزرگتر جواب داد همه ی قلات درو شدهاند. اما هنوز انبار نشدن. بیایید از اون شیاد بخواهیم همه دانه های قله را یکجا جمع کنه و اگه تا فردا شب یک دانه امروز زمین موند او را میکشیم. کشیم. خانوم با شنیدن این کلمات از ترس رنگش پرید. اما روحی فرکو بهتر بود. چون از عهده مسئولیت اول بر اومده بود. او به طرف چمنزار رفت و فکر کرد چطور باید این مشکل رو حل کنه؟ ولی هیچ راهی به فکرش نرسید. آفتاب غروب کرد و شب تازه از راه رسیده بود که یه موش کوچک از میان سوراخی در چمنها بیرون اومد و به پسر گفت از دیدنت خوشحالم دوست خوبم. چرا اینقدر ناراحتی؟ کمکی از دست من برمیاد تا بتونم محبتت رو جبران کنم. فرکو موشی را که پاهاش رو خوب کرده بود شناخت و جواب داد. افسوس تو چطور میتونی کاری را انجام بدی که از قدرت انسان خارجه؟ تا فردا شب باید همه غلات این سرزمین رو یه جا جمع شده باشه اگه حتی یه دونه هم جامونده باشه من جونمو از دست خواهم داد. موش جواب داد همین؟ اصلا خودتو ناراحت نکن. این کارو به من بسپرو تا قبل از غروب خورشید به طور کامل انجامش میدم. بعد از گفتن این کلمات جونور کوچیک دوان دوان دور شد. فرکو هیچ شکی به حرفهای موش نکرد. روی چمنها دراز کشید و تا صبح با آرامش کامل خوابید. روز به کندی گذشت و وقتی شب فرارسید سر و کله موش کچولو پیدا شد و گفت حالا دیگه یه دونه قله هم توی هیچ مزرعی پیدا نمیشه. همه غلات روی تپهی جمع شدهاند. فرکو با خوشحالی نزد پادشاه رفت و خبر داد که دستورش اجرا شده. همه درباریان برای تماشا راه افتادند و حیرتشون کمتر از دفعه اول هم نبود. همه قلات به شکل تپهی بلندتر از قصر پادشاه جمع شده بودند و حتی یه دونه هم جا نموند. اما این کار چطور انجام شده بود؟ مشکوچولو؟ از همه موشهای اون سرزمین کمک گرفته بود و همه با هم دانه های غلات را جمع کرده بودند پادشاه نمیتونست تعجبش رو پنهان کنه اما عصبانیتش بیشتر شده بود و مطمئن بود که دو برادر حق دارن بگن فرکو یه جادوگر بد جنس خطرناکه فقط شازاد خانم زیبا از موفقیت فرکو شادمان بود و با نگاهی دوستانه به او خیره شده بود هرچه چه پادشاهی بیرن بیشتر به اون صحنه حیرت انگیز نگاه می کرد بیشتر عصبانی میشد. چون به خاطر قولی که داده بود نمیتونست اون غریبه را بکشه. اون یه بار دیگه رو به دو برادر کرد و گفت: جادوی پلید او باز هم به کمکش اومد. حالا نوبت آزمایش سومه. چه کاری ازش بخوایم؟ مهم نیست که انجام دادنش غیر ممکن باشه. چون یا باید از اهدهش بر بیاد یا خواهد مرد. برادر بزرگتر فوری جواب داد. اجازه بدید از او بخوایم تا فردا شب همه گرک های این سرزمین روی این تپه جمع کنه. اگه تونست آزاد میشه. وگرنه همونطوری که خودتون گفتین دارش میزنیم. با شنیدن این کلمات شاهزاده خانم شروع به گریه کرد و وقتی پادشاه این صحنه را دید دستور داد دختر را در برج بلندی زندانی کرد و به دقت مواظبش باشند تا زمانی که اون دوگر خطرناک از اونجا دور بشه و یا کشته بشه در غیر این صورت اونو از اون مکان بیرون نیارن. فرکو دوباره به چمنزار رفت و روی شاخه درختی شکسته نشست و فکر کرد این دفعه باید چی کار کنه؟ ناگهان گرگ بزرگی دوان دوان به طرفش اومد و گفت از دیدنت خیلی خوشحالم دوست مهربونم. تنهایی اینجا به چه فکر میکنه؟ اگه کمکی از دست من بر میاد بگو چون دلم میخواد دوستی ما به تو ثابت کنم. فرکو؟ فوری گرگی رو که پای شکستش رو خوب کرده بود شناخت و تعریف کرد که برای نجات جونش تا فردا شب باید چی کار کنه و بعد گفت ولی من چطور میتونم همه گرگ های سرزمین رو روی اون تپه جمع کنم؟ گرگ جواب داد پس مشکل تو اینه؟ لازم نیست نگران باشی من این کار رو تا فردا قبل از برو آفتاب انجام میدم خیالت راحت باشه این حرفها رو زد و به سرعت دور شد. روز بعد پسر همه وقتش رو تو چمنزار گذروند و نزدیک اصر گرد دوان دوان خودش رو بهش رسوند و گفت من همه گرگای این سرزمین رو خبر کردم و اونها در جنگل منتظرت هستن. به سراغ پادشاه برو بگو روی تپه بره تا با چشمای خودش موفقیت انگیز تو را ببینه. بعد فوری پیش من برگرد و روی پشتم سوار شد. من کمکت میکنم تا همه گرگ ها رو به اونجا ببری. فرکو مستقیم به قصر رفت و به پادشاه گفت اگر میخواد نتیجه آزمایش سوم و ببینه روی چپه بره. او اینو گفت و به چمنزار برگشت و سوار بر پشت گرگ به طرف جنگل رفت. گرگ سرعت خودش را به جنگل رسوند و در یک لحظه صدها گرگ به احترام او از جا بلند شدند و هر لحظه به تعداد گرگا اضافه میشد تا آنکه هزاران گرگ به دنبال فرکو به سمت تپه رفتند جایی که پادشاه و همه درباریان و دو برادر فرکو منتظر بودند فقط شاهزاده خانم دوست داشتنی در آن محل حضور نداشت چون درون یک برج زندانی بود و گریه میکرد برادرای بدجنس وقتی دیدن نقشه نقشههاشون نقشه براب شد با عصبانیت پا به زمین کوبیدند و هرس خوردند اما پادشاه ناگهان با دیدن آن همه گرگ که نزدیک و نزدیکتر میشد وحشت کرد و خطاب به فرکو فریاد زد کافیست لازم نیست جلوتر بیاید اما گلگی که فرکو سوارش بود به پسر گفت ادامه بده ادامه بده و در یک لحظه همه گرگ ها شروع کردند به دویدن و همانطور که زوزکشان از تپه بالا می دندونای سفیدشون را نشون میدادند. پادشاه پادشا وحشت زده فریاد زد. یک لحظه صبر کن. اگر گرگا را از اینجا ببری نصف سرزنی... سرزمینم را به تو خواهم داد. اما فرکو حرف را نشنیده گرفت و همراه هزاران گرگ به پیشروی ادامه داد. همه از شدت ترس وحشت می‌لرزیدند. پادشاه دوباره صداشو بلند کرد و فریاد زد: صبر کن. اگه این گرگ ها رو به همون جایی که بودن برگردونی، همه سرزمینم رو به تو خواهم داد. اما گرگ فرکرو را تشویق کرد و گفت: ادامه بده. برو جلو به این ترتیب او و گرگ ها اونقدر جلو رفتند تا به جایی رسیدند که پادشاه و برادرای بدجنس و درباریان ایستاده بودند. و همه را خوردن فرکو مستقیم به قصر رفت و شاهزاده خانم را آزاد کرد همان روز آنها با هم ازدواج کردند و پسر جوون پادشاه اون سرزمین شد همه گرگ ها به خونه هاشون برگشتند و فرکو و همسرش سالیان سال با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند و همه دوستشان داشتند